یارب سببی ساز که یارم به سلامت بازاید و برحاندم از بند ملامت خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت فریاد که از شش جهتم راه ببستند آن خال و خط و ظلف و رخ و آرز و قامت امروز که در دست تو ام کن فردا که شبم خاک چه سودش که ندامت ایان که به تغریر و بیان دمزنی از عشق ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت درویش مکن نالز شمشیر احبا که این طایفه از کشته ستانند قرامت در خرگ زن آتش که خم ابروی ساغی بر می شکند گوشه مهراب امامت هاشا که من از جور و جفای تو بنالم بیداد لطیفان همه لطف و کرامت کوته نکند بحث سر زلف و حافظ پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت